ای که با سلسله زلف دراز آمده ای فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای ساعتی ناز مفرما و بگردان آدب چون به ارباب عرباب نیاز آمده ای پیش بالای تو میرم چه به سلح و چه به جنگ چون به هر حال برازنده ناز آمده ای آب و آتش به همامی ایخته ای از لب لب چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای آفرین بر دل نرم تو که از بحر سباب کشته غمزه خود را به نماز آمده ای زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم مست و آشفته به خلوت که راز آمده ای گفت حافظ دیگرت از خرق شراب آلوده است مگر از مذهب این طایفه باز آوده ای